الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا اشرف الأنبياء والمرسلين حبيب اله العالمين وخاتم النبيين ابي القاسم المصطفى محمد الله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأردين روحه وأرواح العالمين لترى مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببلاغة أمير المؤمنين عليه السلام والاهم ماتل معصومین علیهم السلام در پیشگاه مولانا و مقتدا صاحب العصر و زمان و جهت خوشنودی حضرتشون و تعجیل فراجشون صلواتی تقدیم کنیم اللهم الله. موضوعی که در عرائز دیشب مورد بحث قرار گرفت بحث امامشناسی با سبقه غیر کلامی یعنی امامشناسی دو جور بررسی میشه در معارف یکی امامشناسی که به عنوان یک ضرورت بعد از پیانبران وسیع میاد و یه نقشی به عهده میگیره نه نقش ارائه دین بلکه نقش حفاظت از دین، اجراع دین، مرجع بودن برای مردمی که در امر دین دچار تشکیک میشن و سوال براشون پیش میاد جایگاه رسول، جایگاه واسطه بین خدا و خلق برای ارائه وح که وح باید به رسول منتقل بشه و اون پیام توسط رسول به مردم برسه در قدیر این اتفاق کاملا واضح بود که خدا اصرار داره به پیامبر که باید ابلاغ کنی پیامبر حالا تب اون اختیاراتی که دارند جایگاهی که دارند یه مقدار مثلا به نظرشون میرسه حالا باید مردم آماده تر باشند و خدا با جدیت میاد که نه اینلم تفعل فما و لخت رسالته دیگه در بعض از زیل آیه شریفه است که با یه مقدار زبان یه مقدار با طعم تهدید. که نه که آیه قرارم ظاهرش نمید اگه انجام ندی رسالت خدا را انجام نداری باید این اتفاق بیفته پیامبر منتظری یک تزمینند تا اون تزمین تشریفاتش انجام بشه و لا یعصه مکمه همون تضمین است. منتظری این جمله بودند پیامبر از طرف خدا که خدایا تزمین برای پشتیبانی و اینکه به ثمر بنشین این معرفی بعد بیاد و خدا هم این کارو کرد خدا این تضمین رو داد والله یعصمک من الناس خدا شما رو حفظ میکنه از شر مردم از شر شقیفه به تعبیر من و از نامشون تا ابلاغ میشه خب رسول وظیفه ابلاغ داره امام وظیفه حمایت و حفاظت و طبیعی ولی این داستان بخشی از جایگاه امام محصم علیه السلام ده. در بحث معرفت شناسی خدا عرش کردیم شبیه این بحث هست که حالا در مجلس دیگری اون بحث رو داریم عرش میکنیم اما در این مجلس تیشب اشاره کردم به مقدماتش حتی قرآن شناسی همین جوریه دین شناسی همین جوریه قرآن یه جایگاه کتاب اللهی داره که یعنی متن دین معارف اصلیش تو قرآنه بیایید ببینید بخشش هم در روایات سقلعی کتاب الله و اطرتی قرآن یه جایگاه اینجوری داره متنی که خدا به عنوان کتاب این پیامبر آورده و معجزه پیامبر اما همون قرآن یه مرتبه تبدیل میشه به شافع شفاعت میکنه خب اون دیگه یه جایگاه دیگریه برای قرآن اون قرآن شفا بخش میشه میشه یه جایگاه دیگری نونزده باون القرآن ما و شفاان و رحمتون للمؤمنی ولا یزید الظالمین الا خسار یعنی اون جنبه شفا بخشی قرآن رو وقتی دارن از قرآن برش میکنن به عنوان کتاب دینی مسلمان ها به اون جنبه کاری ندارن میگن کتاب دینی مسلمان ها یعنی اگه میخوای با معارف اسلام آشنا بشی بیا قرآن بخشی از این معارف رو داره بخشش هم در کلام اهل بیت نور علیه مسلمان منکسه بیا محتوای وحی و تماشا کن اونجا دیگه از قرآن به عنوان یک شافع و یک وسیله توسل که شبهای قدر کاملا دیگه به نمایش در میاد قرآن واسطه میشه اللهم این اصل که به کتاب کن منزله و مافی و فی اسم کل اکبر و اسم و کل حسنو قرآن با یه نگاه دیگری اونجا دیده میشه قرآن وقتی در روایات به ما میگن که روز قیامت مصحفی که قرائت نمیشه و قبار میگیره شاکی میشه موجود دیگه یه نقش دیگه است یه های دیگری مد نظره در مورد امام معصوم علیه السلام هم عرض کردیم یه سبقه کلامی بحث در بار امامته. در اون سبقه کلامی که یعنی همون سبقه کتب اعتقادی تو اون نگاه امام علیه السلام با امان زماندار دین و خلیفت الله و کسی که مسئول تدبیر جامعه است اگر خانه نشین نمی شدند اهل بیت اگر بر مسنت می نشستند اگر امامت در جایگاه خودش قرار می گرفت مردم شاهد این اتفاق بودند. خب این که زمانه دین به دست امام معصومه اینکه امام خلیفت الله، خلیفت الرسوله اینکه امام مجزه احکام مبین حلال و حرام خداست اینا همون سبقه کلامیه که جایگاه امامو نشون میده اما اینکه که امام مهربانتر از پدر و مادر نسبت بشه ایانش و اصلا قابل قیاس دیست مهربانی امام علیه السلام نسبت به امتش این دیگه سقه کلامی نداره این یه امام شناسی دیگه است این امام شناسی و اون خدا شناسی و اون پیامبر شناسی کنار مباحث کلامی بلکه بسیار پررنگتر از اون مباحث در معارف اهل حضور داره. و این نقطه بحث ماست دیشبیه اشاره کردم که اینی که امام کشمس تالعه است در فرمانش آقا علی ابن موسرقز آقا و السلام و فل افق الافق بحیث الله تناله لحل والابصار والعبصار که خب ما دستمون به این خورشید نمیرسه ولی چشممون میرسه این خورشیدو و میبینیم خود اونو ولی اون شمس و که امام معصوم داره بیان میکنه اون خورشید امامت، اون از دسترس خارجه یعنی اونقدر متعالیه اونقدر والاس که از دسترس دست ها و چشم ها خارجه از تیرس چشم ها خارجه یعنی خرشید که رو زمین دستت نمیرسه ولی چشمت می‌بینه، خورشید امامت فراتر از اینه که چشم ها هم بتونه او رو رعیت کنه. نه که معصوم رو نمیشه دید. نه اون باطن امام رو دارن بیان میکنن. وگرنه چهره ظاهری امام معصومان السلام توسط اصحاب توسط مردم رعیت میشده. ما محروم شدیم از این نعمت. این نعمت به واسطه امر <تصفح> غیبت یرحم <تصفح> خورشید جمال نورانی حضرت بقیعت الله العظم الوهنا فدا زیر ابر غیبت پنهانه ولی بقیه مردم که محروم نبودن اینی که حضرت دارن این جملات رو میفرمایند در ذیل یک بحث کلامیه یعنی مردم در مسجد مبع روز جمعه است نشستن نشستان مثلا گروه هایی دارن مناظره میکنن و صحبت میکنن برس در مسئله امامت. حضرت تشریف آوردن در مسجد و شروع کردن درباره امامت صحبت کردن. چه نتیجه میخواستن بگیرن؟ میخواستن نتیجه بگیرن که امامت امری که کار مردم نیست. به اختیار مردم نیست. اصلا امامشناسی کار مردم نیست. امام شناس خداست و خدا باید معرفی کنه امام رو امام محسوم رو این رو مد حضرت در ضمن عبارت های مثل امین کشمس طالعه و امثال اینا بیان کردن جملات آخر همین روایت که در کافی شریفه اینی که حالا که امام با چنین شاخصه هایی باید معرفی بشه پس به اختیار مردم نیست و عقل مردم قاصره از چنین امام شناسی و امامت شناسی این نتیجه رو بعد می‌گیرن و این روایت یکی از مرتبطترین روایات به موضوع بحث این مجلسه چون با سبقه کلامی شروع میشه و با اون سبقه مکمل بحث امامت تموم میشه و برای حضرت امام رضا حالیسان برای که ثابت کنند که امام شناسی کار مردم نیست و با رأی مردم نیست به اختیار مردم نیست به انتخاب مردم نیست امام شناسی به انتخاب خود خداست و کار مردم اینو میخوان ثابت کنند که ای گروهی که در مسجد جمع شدید دارید در مسجد امامت بسلی کنید و هر کدومتون یه تعریفی از امام ارائه میکنید شما اصلا امام رو نشناختین، امامت رو نشناختین و شروع می در طی یک خطبه بسیار شیوا و زیبا با تشبیهات، با تمثیلات، امامت رو و جایگاه ما تبیین طبیعی می و این یکی از های خوبه که اون بحث کلامی امامت کافی و وافی نیست. باید با این بحث ها تکمیل بشه. باید با این بحث هایی که امام شناسی معارفی اسمشو میخوایم بزنیم. هر چی میخوایم اسمشو بزنیم. یعنی امام شناسی که در معارف اهل بید عده مسلمان به عنوان شاخصه هایی که در کتب کلام این شاخصه ها مطرح نمیشه، چون خیلیش اصلا عقلی نیست. خیلیش اصلا توسط عقل عقل از کجا میفهمه که امام باید از ناس باشه امام باید عبدون ناس باشه امام باید عشجون ناس باشه نه ایشون میخواد تدبیر کنه احکام و دلیل عقلی بحث امامت بردش اینقدر که یک نفری باید باشه حافظ احکام الهی و مجرد احکام الهی نقش اصلیه و او زمان امور مسلمان ها رو دست بگیره در این حده وقتی حد استرلال های امامی در همین حد ثابت میشه. امامی که به راه های آسمان داناتر از راه های زمین باشه از این استرلال ها بیرون نمیاد. لازمه این ها چنین امامی نیست. ولی امامی که معرفی میشه در روایات باید بگه سلونی قبله انتفقیلونی باید چنین علمی داشته باشه که بگه هر چی میخواییم بپرسید باید علمش ای باشه که بگه من به راه های آسمان داناترم یعنی بیشت سوال کنید من از آسمان ها براتون خبر میدم از نقطه هایی که اصلا شما هیچ وقت نخواهید دید و هیچ وقت عقلتون و فهمتون نخواهد رسید اصلا شاید اشاره کردیم دیشب باید بیاد بگه من اصلا سنخ علمم متفاوته علم من و با علوم خودتون همتراز قراره مثلا علمم لدنیه علم شما تجربیه تعلمیه من اصلا علمم من من و علم الكتابه اصلا علم من سنخش فرق داره علم من یک نمونهش آصفبن ابن که یه قطره از این علم الکتابه به تعبیر ده باید یه قطرش این کار میکنه که این علم چنین قدرتی داره تخت بلغیس رو از اون فاصله دور با اون عظمت ظاهری در کمتر از پلک زدنی قبل ایر تد الیکه ترفک حاضر میکنه برای سلیمان نبی علا نبی و آلی و سلام قال اللذی اندهو علم، من الکتاب، انا آتی که بی قبل ایرتد ایلکه ترفوق. من قبل از این که پلک بزنیم من چنین علمی دارم. علم من چنین قدرتی داره من علومی دارم که میتونه یه تخت با این شوکت ظاهری رو از فرشان ها فاصله در کمتر از پلک زدنی حاضر کنه. فلام مارآهو مستقران انده و وقال نظام فضل ربی تا این جمله رو گفت اسف ابن برخیام بلافاصله ت حاضر شد جنی که قادر بود و اول پیشنهاد گفت داد گفت انا آتی کبی قبل ان تقوم من مقامک من قبل از اینکه از تخت بلندشی منم قدرت منم یکی از اجندم که قدرت فوق ای داره برای این کار ولی من به اندازه بلند شدن شما از روی تخت زمان نیاز دارم. الذی عند علم من کتاب که روایت می‌فهمد نسبت این علم با علم الكتاب کامل نسبت قطره و دریا است. اون قطره هم چه قدرتی میده؟ امیرالمومنین با من عنده علم الكتاب اهل بید مصداق من عنده علم الكتاب چه قدرتی پیدا می‌کنن؟ در عالم خب این رو در کتب کلامی بحث نمی کن. اونجا میگن امام باید علم داشته باشه باید احکام بلد باشه وقتی مسئله ازش می مثلا مثل مدعیان دروغین امامت که در بین اولاد حده بیتن بعضی بودن دیگه وقتی مسئله میرفتن امتحان می کردن شیعان زرنگ. من جمله قومی ها وقتی می خواستن بدن اگه دوچاره تردید میشون، شونم ما بلدیم چه کار بکنیم؟ جواب این مسئله ها رو بده ایکی دو تا سوال می پرسیدن تا می تا چه چیزایی از من مخوند. از من علم قیل خب تعطیل این امام نیست یا مثلا در زمان بیویشتیت نیشابوری در زمان آقا موسفل جفل سروات هست گفتن اگر جواب سوالا ها بدونی که لاکمه به این سآل ها باز شده باشه اگر دادی قبول, قبول. گفت چه چیزایی از من مدعیان کازه به امامت این رسوا می شده. این شاخصها رو روایات برای امام معصوم بیان میکنه عقل اینا رو عقل اصلا هیتش اینقدر نیست. امام معصوم در روایات آنم که فلقت جوزت دست. در سبقه های کلامی این بحث ها، این حرفها نیست. حتی شاید وقتی این بحث ها میشه، بعضی هاشون بر نتاوند داریم در تاریخچه متکلمین چنین اعتقاداتی رو که حاکی از ضعف معرفتیه. ولی در این حال علم کلام از پس رسالت خودش به اندازه‌ای که ادعا کرده وظیفه من بوده انجام داده و بر اومده از پسش بر اومده اما این معناش این نیست که هیته این مباحث محدود به همون مباحث برد باشه مرزش تا همون اندازه‌ای که اینا بحث کردن باید امام شناسی توسط خود امام معصوم تعلیم بشه اهل احلالبیته ادرا به ما فیل باید. خودشون میدونند تو خونهشون چه خبره. آدم قریبه که نمیده تو خونه یه نفر چه خبره. یا اگرم بدونه کدوم یکی اگه حالا اختلاف شده. خود صاحب خونه گفت تو خونه ما چه این چیزی هست. بقیه گفتن نیست یا بلعکس. اهل بیت ادرا به ما فل بیت. وقتی احلال بیت میفهمن امام باید همچین علمی داشته باشه. اگه دیدی امامت سخن یک شخصی رو که از آفریقا پاشده اومده و با زبان آفریقایی داره صحبت میکنه نمیفهمه تو امامتش شک کن. امام معصوم حتی سخن پرندگان رو حتی سخن حیوانات رو هم میفهمه و میتونه با رو حرف بزنه. تو اینجا پله پله امام شناسی شکل میگیره. نه فقط بحث علم باشه نمونهاش رو داریم. ارز میکنیم. بحث عبادت امام. معجزات امام. خب یه بخشش در کلام بحث میشه. معجزات انبیا. خب انبیا بیان نصر بر امامت کن. امام نیاز با معجزه نداره. امامت در درجه اول با نص ثابت بود. با نصر اله میشه. امیران مومنین با معجزه که صاحب خلافت و وسایت نشدن که امیر با بَنَس الهی در قدیر و غیر قدیر از یوم الانذار تا یوم الخميس معرفی شدن قدیر با شکوه ترین صحنه معرفی امیرالمومنینه با شکوه ترین و علنی ترین صحنه و اقص بهیعت میشه در این صحنه ولی تنها صحنه نیست امامت با است، با نصد الهی امام رضا تو همین رویت نتیجه میگن که حالا که بینید خیلی نکتش مهمه تو بحث امامت که حالا که امام باید اینجوری باشه که من علی ابن موسر رضا دارم میگم پس بفهمید کار مردم نیست به اختیار مردم نیست و با عقل مردم هم به دست نمیاد این نتیجه یک ازد پس خیلی مهمه این بحث های معارفی غیر کلامی با سبقه غیر کلامی این بحث ها میخواد به نتیجهی برسونه که امامت جایگاهش اونقدر والاست پس سنی که اومدی میگی خلفای ما چیکم کم دارن اصلا نمیدونه امام بود نقطه مقابل این بحث امامت اند غیر شیعه است حتی نبوت عند غیرشیعهاس انقدر تنزل دادن شعن پیامبر رو اونقدر تنزل دادن شعن خلیفه رو که به کار خلفاشون بیاد و قد کوتاه خلفاشون قدری فضاحتش پوشیده بشه امامت آوردن قدش رو کوتاه کردن از قله آوردنش پایین باید کنید نه اصلا پیامبر ها ممکنه گناه کنه. تو مکتب سنی ها پیامبر میتونه گناه کنه میکنه الان وحیو برسونه بیشتر از این ما چیزی ازش نمیخواد گناه هم کرد کرد و خیلی چیزای دیگه خیلی کارای دیگه ای که ماها میگیم اصلا ما در مورد یک مؤمنه معمولی هم این کار رو برنمی تابیم اونا برمی تابند پیامبر اونا میتونه پیامبر اونا نه پیامبر ما پیامبر اونا میتونه زنش رو رودوشش سوار کنه و بگه تو بیا این کنیزایی که دارن بزن بکوب میکنن دارن تقنی میکنن تو بیا تماشا کن پیامبر اونا زنشو اینجوری میبره عایشه رو اینجوری میبره میگه بیا تماشا کن بزن به کوب اینا رو این شن پیامبر نیست پیامبر شیعه ها کجاست پیامبر سنی ها کجاست حتی خدای شیعه ها کجاست خدای سنی ها کجاست مثلا ما اخترافون فقط این مسئله امامت نیست که مشهور اینجوری فکر میکنن ما حتی در خداشناسی مختلفیم در پیامبر شناسی کتاب هاشون هست و روایت هست و پیانبر اونا سهر میشه یکی از مهمترین و شدیدترین اقسام سهر در موردش اتفاق میفته. حالا که به مضمونش اشاره نیکن ولی پیانبر ما اصلا متعالیه پیانبر ما وقتی ازش صحبت میشه تا از جایگاه ثابت میشه لولا کلما خلق ثل افلاک تا از نطقش ثابت میشه ما انتقا انل هوا ان هو الا وحی یو تا از اخلاقش ثابت میشه انک لعلوا خلقین همین اصلا جایگاه متعالی کاملا بر از قداست سرشار از نورانیت این پیامبر شناسی تو کلام قرآن احرابیت به دست میاد. این پیام شناسی تو این مباحث معارفی به دست میاد. امام شناسیش شن هم همینه. امام رضا صلوات الله و سروانه. شروع میکنن با همون مسئله امامتی که رایجه. که امام زمام امور مسلمین به یدشه. اینجوری شروع میکنن امام وظیفه تبین حلال و حرام الهی رو احتداره. خب میگن خب بله اینا بود. یه مرتبه پرده عوض میشه یه مرتبه میشه کشمس طالع امام مثل خورشیدیه که فراتر از چشمها و از دسترس درست اصلا یه عوض میشه یه پرده دیگه باز میکنن بینید تفاوت نگاه چقدر فراونه امیر المومنین علیه السلام یکی از عیبهایی که این ها برای حضرت تراشیدند مخصوصا دومی یکی از این که شوخه به درد خلافت نمیخوره نوزو بگنه این صفتی که در امیر یک کماله یک کمال ایمانیه روایت مؤمن مامن مومن الا وفیه دعابه مومن یک شوختبعی درش از خود روایت دعابه رو معنا کرد دعابه یعنی مذاه شوختبعی سالم این جزء کمالات مؤمنه که مؤمن نباید فض قدیز القلب باشه ولی اون چون خودش اینجوریه چون خودش حتی در منابع خود سنیا بد اخلاقیاش مطرحه خشونت ها و فض قدیز و القلب بودنش ثابت شده و مهرزه کتابی هست از منابع خودشون کتاب مختصری است رفتار شناسی خلیفه دوم و تو بازار باشه اول صفحه یه وقت تو کتاب فروشی امیرانگانی هنسان دیده بودم داشتی که وقتا شراسی خلیفه دوم از کتاب های خودشون از منابع خودشون خشونت ها و بد اخلاقی ها و حالا همون تعبیل قرآنی فرز قلیزال قلب بودنشو ثابت کرد. خب چنین کسی نمیگذاره امامت در جایگاه خودش بمونه برای اینکه رو یه جوری بتونه به اسم خلیفه معرفی کنه بدید امامت در این نگاه باید از اصلاب شامخه و ارحام متحره زایده شده باشه بعد آدم آدمی که اصلا نسب درستی نداره که بحثش در جا خودش چجوری میخواد توی این وادی مدعی در بیاد جوری امام رو معرفی کردن که اگه یه آدم منصفی بیاد اینا رو جمع کنه کنار هم جامعه کبیره خودش یکی از این منابع جامعه کبیره باشه بگه امام باید این شکلی باشه شاخصه های امام رو یکی یکی بچینه بعد خب ما چجوری بفهمیم این خود خدا باید بگه که کسی دارم که این کسی دارم خیال گناه هم نمی کنه ما چجوری بفهمیم که چه کسی خیال گناه میکنه یا خیال گناه. باید خدا بیاد انگوش بذاره این خیاره ناس نیست به اختیار ناس نیست. چقدر زیبا علی ابن مسر رزا از شاخصه های متعالی بحث امام به این نتیجه می که امامت فقط باید به نص الهی باشه و به اختیار مردم و به رأی مردم و به تشخیص مردم به عقل مردم نمی بشه. شدنی نیست چون تعریف امام رو حضرت دارن و اونی که هست بیان میکنن وقتی امام درست معرفی بشه همه سر تعظیم فرود میارن و اقرار میکنن که چنین شخصیتی رو ما نمیتونیم بشناسیم تشخیصش کار ما نیست این در حیطه اطلاعات ما نیست اگه فقط میگفتید امام باید مثلا خیلی شمشیرزن باشه میگیم خب شمشیرزنیشو دیدیم اگه می میگفتید فقط امام باید هر مسئله می میپرسید جواب بده خب ما مسئله پرسیدیم جواب داد ولی این چیزایی که دارین شما میگین از قداست نفسانی صحبت میکنین از نور بودنش صحبت میکنین نه از نور بودنش نور الله باید باشه امام نه تنها نور الله باشه و هم والله در روایت ابو خالد بن اسلم امام و هم والله یونورون قلوب المؤمنین نه که نور باشه باید منورم باشه امام محسوم نه تنها باید نور باشه بلکه باید نورآفرین هم باشه بتونه قلب مؤمنین رو سرشار از نور کنه و هم والله یونورون قلوب المؤمنین وقتی این نگاه تو بحث علم تو بحث معرفت الله معرفت الله امام ادسانه تو بحث تقوای امام اسمت امام امام باید آیه تاکید در موردش باشه خدا تضمین کرده باشه که اینا پاک کرد تضمین الهی باید پشت اسمت اهل بیت رو امضا کرده باشه و این جز در کسانی که خدا خودش به دیگه اینو اینجوریه. یعنی خدا بگه من اینو بیمه میکنم. من بیمه میکنم که اینا آدمایی ان که لا الله فلاح تو لام. این. اینا آدمایی که حتی خیال گناه نمی کنند. اینا نسلا بعد نسلن در عصب شامخه و ارحام متهره بودن. اینا رو خدا باید توسط آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم در اختیار ما بگذار این اطلاعات یعنی اوصاف امام و شاخصهای امام وقتی با تکمیل معارف اهل بیت جنبندی میشه بعد میبینیم همه باید سر تعظیم فرود بیارن بگن ما دستمون کوتاهه ما نمیتونیم اصلا این شخصیت ها رو بشناسیم و تشخیص بدیم. خدا خودت بگو کیان؟ خودت بگو آیه تطهیر رو برای کیا فرستادی؟ و خدا هم بیان میکنه. حالا با تمام شخصهاد میخواستم فقط یه مثاله بزنم. تأکیدم امشب روی این روایت امام رزا علیه السلامه که امام رضا با شاخصه کلامی بحث امامت که تو مسجد هم مردم نشستن دارن در بارش شروع میکنن بعد ثابت میکنن که اینا نمیتونن امام شناس باشن امام شناسی کار مردم عادی نیست باید خدا بیاد تو میدان باید امام معصوم خودش بیاد خودش معرفی کنه و شاخصه بگه تا بعد معلوم تا سیاه رو شود هر که در رو اون تکلیف سقیفه روشن میشه بله. که اصلا سقیفه مال این حرفانی است اصلا شبه زعیفی هم در مورد سقیفه نبا نگاهی که تبر را اونقد نفرت در های مؤمنین ساخته که اصلا نیازی به بحث استدلالی نیست یعنی خباست های این خبیس ها اونقدر مبرخنه او ثابت شده است که برای بچه شیه ها نیازی نیست اما الان بحث منطق امامت را داریم ارز میکنیم که اصلا نیازی به هیچ استدلالی برای بیلیاقتی این ظالمین نیست چرا؟ چون لا یا نالا از ظالم. چون یکی از شاخصه های امام که امامت احدالله و لا یا نالا احدی از ظالمی خب اینا رو بخشیش رو در کتب کلامی اشاره میکنن اما به این وسعتی که ارز می به این وسط نیست وگر نه به همین آیه لا یا نالا احد ظالمی این در نبایش کلامی امامت باید بیان انجازه می ظالم نمی تونه امام باشه اما عدالتی که در امام معصوم علیه السلام به عنوان شاخص میاد غیر از عدالتیه که تو ذهن مردمه اون عدالت در چنان قله که حتی خیال و فکر بونو هم از خاطر مبارکشون عبور نمیکنه اون خیلی فراتر از بحث عدالته و این نگاه رو کاملا عوض میکنه. این سبک بحث در امام شناسی امام بیا میگه امام محسون خودتون خودتون رو معرفی کنیم. علا بیتم کم نرزه امام مهادی علیه السلام کلاس امام شناسیشون زیارت جامعه کبیرست. امام رضا علیه السلام تو این دوایت دوایت دیگه هم داریم که های امام رو بیان میکنن. حالا عرض میکنیم دیگه برای امشب همین مقدار کفایت میکنه تا این شاخصها رو یکی یکی برازی کنیم اصلا آدم دیگه میبینه که توی بحثای امامت تراز و شاخصها خیلی بالاتر از اینه که توحام و تخیل اینکه اون بی سرپاها میتونند بر کرسی خلافت تکیه بزنن به وجود نمیاد اصلا اصلا اونم نه تنها مال این حرف هایستن اصلا این حرف ها هستن که حالا انشالله تو شاخص که بیان بشه با همین سبکی که کردیم که باید بیان کردن آیات قرآن بیان کردن تا اون جنبه های امام شناسی که ای اخ... وقت امام مثل مادره امام پدر مهربانه امام عنیز رفیق رفاقت امام اونس امام دلسوزی امام اینا نمرز و لمرز کن ما با بیماری شما بیمار میشیم مثلا وقتی یک رعیتی بدون اربابش انقدر دوستش داره با این که عربابه، امام واجب الله و عتی الله و اول امره میکن. اون فرمان بری سر خودش محفوظ، اون وجوب اطاعت، امر شماست، چونوچه چرا نمی همه اونا محفوظ یه مرتبه احساس کنه که عربابش با بیمار شدن این رعیت بیمار میشه. چقدر نگاهش تغییر میکنه؟ به امامش که من یعنی من دیاقت دارم که امام من به خاطر من تب کنه با بیماری من بیمار بشه خودشون چون فرمیدن خودشون خودشون اینجوری معرفیم کنیم اینا نم رضا لمن رضا کن نفرحال فرح کن نحسن رو لحوزن شما عروسی دارین بچه تو دومات کردی ما خوشحالیم بچه شیعا خوشحالن شما بچه دارد دار شدی خوشحالیم ما خوشحالی. ای یا علیگو به دنیا اومده. یه نسری خدا به چی اینان ما داده امامی که خوشحال میشه و خوشحالی ما ما قمگین میشیم و هم قمگین میشه این امام شناسی رو لطافتی ایجاد میکنه عرضم تمام لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد ای مهربان ترست پدر و مادرم سین قم امام وقتی میاد قمشن دل نشینه انتظار برای امام زمان در عین تلخی انتظار شیرینه این کسی که احساس میکنه چشم به راهی نفر هست که قرن در پرده قیبته خود این حلاوت انتظار به جانش می نشینه این انتظار تلخ که شیرین نمی شود شیدین بود برای تو یا ساه و زمان افتادم به خانک بسیر ره گذارها شاید که افتده به دو چشم گذار ما را به پنک دیده و مجگان چه حاجت است جز آن که گیرد از کف پاید قبار بر چشم ماز خاک قدومت نسیب کن کین ترفسر مراس بسیر اعتبار ها که اینطور فسر مراس بسیر اعتبار اونقدر رحمت دارم اونقدر عطفت دارم حتی نمیگذرم قلامشونم بی نصیب شبیه رفتاری که با جوانش علی اکبر داشته با قلامشان در صحنه آشورا همون رفتار رو داشت عبا عبدالله یه مرتبه گرمای صورتی رو احساس کرد. چشماش باز کرد. دید اربابش اومده. صورت امام محسوب رو صورتش گذاشته شده. فتح بس یا صاحب الزمان همه شیعیان و محبین به این حلاوت فکر کردن و چشم انتظار این هر نوکری آرزوش وقتی میخواد بمیره عرباب بی کفن بیان جان میدم به شوق و تو و یا حسین تا بر سرم قدم نه جان نمیدم نگذاشت کربلا هیچ کس آرزو به دل بمانه وقتی کناره بدن را خودش از پا افتاد تا چشمش افتاد به بدن علمدارش کنار الغم الآن انكسر ذهري وغلت غلت حيلتي أخي من يحمي بنات محمد أبل فاس كمر مشكسد قلت حیلتی بیچاره شدم عبا چرا بیچاره بشه عبا عبدالله پایدو به خیمه ها واشدن عبا لفظ عبا لفظ قامت حجت خدا تاشده ابل فرد ابل فرد اخی من یحمی بنات محمد سر نیشتر حمن من لا یرحمون شن علم دارم کنار علقم نقش زمین شد بر جبین سر زینب غمدی بخونده اگر امام حسین صدا زد کمرم شکرد زبان خیمه آئین بود و ضیعتا امان از اسیری یا کاش فرکر این وجه الحسین اکشف کروبنا و حق اخی کرد <سيح> <سيح> يا رب الحسين بحق الحسين اشب صدر الحسين بظهور الحجة <سيح> يا رب فاطمة بحق فاطمة اشب صدر فاطمة بظهور الحجة یا رب العجب حق الهجه، اشف صدر الهجه، به ظهور فرج عن مولانا صاحب الزمان، و فرج عن جميع شیعته و حيهم وميتهم و وجاء محمد وآله الطاهرين.